کتاب قصده و افسانه های ایوارشاه نویسنده لوریز چکناوریان ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های سوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده الهه اصلانی سلام و عرض به شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه. داستانی ای از کتاب قصه ها و افسانه های ایوار شاه میخوام براتون بخونم. اسمش هست شاهزاده و دختر آشپز. پایین خوابگاه شاهزاده گروه کره کارکنان کاخ سرود تولدت مبارک رو به مناسبت 25 سالگرد تولد شاهزاده میخوندن. شاهزاده از صدای آواز بیدار شد و رفلب پنجره و برای گروه کور دست کنداد و اونها بعد از تمام شدن سرود برای شاهزاده کف زدند و شروع کردند به شاهزاده در میون اونها دختری رو دید و در جا عاشق او شد برای دیدن دختر از نزدیک به سرعت لباس پوشید و با عجله پایین دوید و به حلقه رقص پیوست و خودش رو به دختر نزدیک کرد دختر سراپا یک فرشته تمام حیار بود شاهزاده رقص رو با او ادامه داد دختر در آخر رقص مانند همه به شاهزاده تبریک گفت لبخندش اونقدر زیبا بود که قلب شاهزاده لرزید و بی اختیار به دختر گفت دوست دارم و میخوام باز هم ببینم دختر ترسید و فرار کرد. ملکه از ایوان قصر همه چیز رو دید و عشق شاهزاده را فهمید و متوجه احساس شاهزاده شد. نگران شد از اینکه فرزندش عاشق دختر سرشوز کاخ شده. شاهزاده با قلبی پر از عشق به کاخ برگشت. شاه و ملکه به دیدار شاهزاده اومدند و بعد از ربوسی و تبریک هدایایی به شاهزاده دادند. شاهزاده تشکر کرد و شروع کرد به باز کردن هدیه ها. ملکه یادآوری کرد که امشب قرار به افتخار تو مجلس جشن بزرگی به کنیم. زیبا دختران کشور رو که از خانواده های معتبر هستن دعوت کردیم تا تو ملکه آینده ی کشور رو انتخاب کنیم. شهزاده جواب داد مادر عزیز من انتخابم رو کردم. ملکه گفت پسرم تو امشب؟ ستاره های درخشان کشور رو میبینی؟ صبر کن لطفا. شاه و ملکه اتاق رو ترک کردند. شاهزاده محافظ خودش رو فرستاد برای تحقیق در مورد دختر. محافظ رفت و با جواب اومد. گفت او دختر سراشپز کاخ است. شاهزاده پرسید اسمش چیه؟ محافظ گفت نازنین شاهزاده ی عزیز. شاهزاده گفت میخوام یه بار دیگه ببینمش. میتونی فردا ترتیب یه قرار مخفیانه رو بدی محافظ گفت دروی چشم قربان. اصر شد و مهمون ها اومدند و به همراه زیباترین دختران کشور. شاه و ملکه همراه با شاهزاده وارد سالن شدند. ارکستر شروع به نواختن موسیقی کرد. شاهزاده قرار بود با تک تک دخترها برقصه و از میان اونها دختر دلخواهش رو انتخاب کنه. شاهزاده دختر سراشپز رو دید که از مهمانها پذیرایی میکرد. تمام حواستش پیش نازنین بود. بعد از رقصیدن با دخترها رفت پیش نازنین و اونو به رقص دعوت کرد. با خرای رقص، نازنین فرار کرد و ناپدید شد. سر و صدا و هم همهمه در سالن پیچید همه میپرسیدن که این دختر آسمونی کی بود و کجا رفت. ملکه ناراحت و عصبی از این رویداد به سراشباز دستور داد که دخترش رو بلا فاصله و مخفیانه به جای دوردستی بفرسته شاهزاده توی کاخ دنبال نازنین میگرش ولی اونو پیدا میکرد ملکه اومد و شاهزاده رو سخت سرزنش کرد و گفت درست نبود که در برابر مهمان و دخترهای زیبا با دختر سراشباز برخصی شاهزاده گفت ما در من فقط و فقط اونو دوست دارم ملکه با عصبانیت گفت دختر سرش باز هیچ وقت نمیتونه ملکه بشه شاهزاده گفت این رو بدون که من به خاطر عشق حاضرم از سلطنت بگذرم روز بعد شاهزاده شنید که نازنین نیمه شب با پدرش کاخ رو ترک کرده شاهزاده های معمولی پوشید و سوار اسب شد و رفت تا نازنین رو پیدا کنه روزها و هفته و ماه شهر به شهر و ده به ده در پی پیدا کردن دختر بود. روزی شاه خسته و کوفته به دهی رسید تا در اونجا برای اسب و خودش از احالیه ده تقاضای آب کنه. ناگهان دختری رو دید که دا شیر میدوشید. وقتی که نزدیک تر شد نازنین رو شناخت ولی به روی خودش نیاورد ترسید دوباره فرار کنه. نازنین؟ شاهزاده را با اون ریش و بلند و چهره خسته نشنافت. پس از چند لحظه نازنین به شاهزاده گفت چقدر چشمای تو آشناست از کجا میای؟ شاهزاده گفت: از یکی از دهات همسایه برای سفر طولانیم به آب و کمی خوراک احتیاج دارم. نازنین برای شاهزاده خوراک فراهم کرد و مشکل اونو پر از آب کرد. بعد به او گفت: صدای تو خیلی آشناست. قلبم به من میگه تو رو که جایی دیدم. صدا و چشمه از شبیه به کسی است که میشناسمش سکوت برقرار شد. بعد از چند لز ناگهان نازنین از جا پرید و داد کشید ای خدای من شاهزاده هم از جا پرید و نازنین رو در آغوش کشید و گفت سرانجام پیداد کردم. من از اولین نگاه عاشق تو شدم و نزدیک یه سالی که در جستجوی تو هستم اگه تو هم منو دوست داری من اینجا میمونم و با هم زندگی میکنیم من از شاهزاده بودنم دست میکشم اشکای نازنین مثل ابر بهار از چشماش سرازی شد و گفت من سالهاست عاشق تو هستم تو در کاخ بودی و من در آشباز خونه منو به دستور ملکه شبانه از تو دور کردند ولی عشق واقعی همیشه بیروزه شاهزاده و دختر از خوشحالی شروع کردن به دویدن و رقصیدن و فریاد کشیدن که ناگهان صدای شیپور از دور شنیده شد حال شاه و ملکه و سرشباز رسیدن از اصفا پیاده شدند و هر دو رو بغل کردن شاه اعلام کرد که بادشای آینده پسرش و ملک آینده نازنین خواهد بود همگی با شادی به پای تخت برگشتند و هفت روز هر شب جشن عروسی گرفتند کانال تلگرامی هزار های داستانهای ای صوتی نشانی کانال تلگرامی tme نقطه می مهران دوستی نقت م e م e چ ر a FA نقط COم، مهران کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.